داستان اینم هفتا زنی بود که یه دختر چاق و چله خیلی شکمو داشت وقتی مادرش آش سر سفره می آورد یه بشقاب، دو بشقاب، سه بشقاب میخورد و بازم می خواست. مادرم مادرم رو پر می کرد و می گفت اینم سه تا، اینم چهارتا، تا، اینم پنج تا و وقتی که دختر بشقاب هفتمو می مادره با چوب میکوبید تو فرق سرش و فریاد میزد اینم هفتا یه روز جوون خوشتهباسی از در خونهشون رد میشد از پنجره دید که مادر دختره داره دخترشون میزنه و فریاد میکشه اینم هفتا چون دختره جوون و قشنگ و توپول بود گلوی جوون پیشش گیر میکنه و میره دم در خونشونو، بهشون میگه هفتا چی؟ مادره که از داشتن یه همچین دختر شکموی خجارت میکشید گفت هفتا دوک نخ یه دختری دارم که دیوونه نخ ریسیدنه جوری که پشمو رو گسفن میریسه امروز هفتا دوک برای ریسیدن بهش دادم اما هنوز بسش نیست برای این که باید بزنمش. جوون گفت اگه موضوع اینه خب بدینش به من. اول امتحان میکنم ببینم کارش چطوره. بعدش هم باش عروسی میکنم. خلاصه. جوون دختره رو با خودش برد خونه. اونو گذاشتش توی اتاق پر از نخهای آماده برای نخریسی. بعدم بهش گفت من ناخودایی کشتیم. باید به سفر برم. وقتی برگشتم، اگه همه این نخها رو ریسیده باشی، باها عروسی می کنم. اتاق پر بود از لباسا و جواهرای قشنگ. چون ناخدا خیلی ثروتمند بود. ناخدا گفت، وقتی زنم شدی، همه اینا مال تو میشه. و بعدشم خداحافظی کرد و رفت. دختر توپل ما روزها با جواهرات و لباسها بر و هی خودش رو توی آینه نگاه میکرد. کرد. خدمتکارای خونم همش بهش قضا میدادن. خلاصه نخها مثل همون روز اول گوشه اتاق باقی مونده بود. تا اینکه روز آخر شد. فردای اون روز ناخدا از راه می رسید. دختره فکر کرد که دیگه زن اون ناخدا نمیشه. و از ناراحتی شروع به گریه و زاری کرد. داشت زار زار گریه میکرد که یهو یه بخچه چلتیکه از پنجره افتاد توی اتاق. گبچه چلتیکه یه پیرزن بود. با موجه های بلند پیرزن ایستاد و گفت نترس. اومدم کمکت کنم. من نخها رو می ریسم و تو هم کلافشون کن. ریسنده تر و فرسر از اون پیرزن پیدا نمیشد. تو یه ساعت همه ی نخها رو رشته کرد. هرچی بیشتر نخ می رسید، بلندتر بلندتر میشد. حتی بلندتر از دماغ و چونش. وقتی که کارش تموم شد؟ دختره گفت: آهای زن مهربون من چطور میتونم کمک شما رو تلافی کنم؟ پیرزن گفت نمیخواد تلافی کنی فقط وقتی که زن ناخدا شدی منو به نهار عروسی دعوت کن دختر گفت چطوری دعوت کنم؟ پیرزنم گفت فقط کافیه صدام کنی کلم بینا و من میام اما وای به حال دگه اسمم یادت بره اون وقت انگار نه انگار که کمکت کردم و دخل تو میارم. فردای اون روز ناخدا از سفر برگشت و دید تمام اون نخا رشته شدن. به دختره گفت آفری. فکر میکنم درست همون زنی هستی که من دنبالش بودم. اینم از جواهرات و لباسایی که برات خریدم. اما حالا باید به یه سفر دیگه برم. و باید تو یه امتحان دیگه به من پس بدی اینم یه بسته نخ دیگه دو برابر نخای اول وقتی که برگشتم اگه همه رو رشته کرده باشی بهها دروسی می دختر قصه ما مثل دفعه قبل شروع کرد بر بررفتن با لباس و جواهرات خوردن سوپ و لازانیا و تموم نخارو تا روز آخر همونطور دست نخورده باقی گذاشت بر روز آخر دوباره شروع کرد به گریه و زاری اما دوباره صدای افتادن چیزی از لوله بخاری رو شنید دوباره یه بخچه چلتیکه وسط اتاق قل میخورد بخچه چلتیکه دوباره سرپای استاد پیرزنی بود با لوای آویزون اونم قول داد که به دختر کمک کنه و نشست و شروع کرد به ریسیدن نخها. پیرزن دومی حتی زبروزرنگتر از اون اولی بود. هرچی که نخها رو رشته می کرد لباش دراستر و آویزونتر می شد. خلاصه کمتر از نیم ساعت همه اون نخها رو رشته کرد. بعدم به دختره گفت باید قول بدی که من واسه یه نهار عروسیت دعوت کنی. کافیه که فقط صدام کنی کل اما اسمم یادت نره ها. وگرنه کمک من به تو به هدر میره و اون وقتیه معلوم نیست چه برای سرت میاد. ناخدا برگشت. از همون بیرون در پرسید همه ی نخار رو رشته کردی؟ دخترم گفت: بله همون روز اول ناخدا گفت: این لباس و جواهرارو را بگیر. این دفعه وقتی که از سفر سب من برگشتم اگه این نخورم رشته کرده باشی بهت قول میدم که دیگه فورا باهات ازدواج کنم. این دفع مثل دفعه دیگه دختره بدون اینکه حتی یه دوک نخم رشته کنه با لباسها و جواهرایی که ناخدا براش آورده بود سرگرم شد. روز آخر رسیده بود. این دفعه بخچه چلتیکه از ناودون افتاد وسط اتاق. بخچه چلتیکه پیرزنی بود که دندوناش خیلی دراز بود. وقتی شروع کرد به ریسیدن نخها دندوناش دراز و درازتر شد. خلاصه، تو زمان خیلی کمی همه ی رو رشته کردن. بعد هم پیرزنه به دختره گفت برای ناهار عروسی حتما دعوتم کن. باید صدام کنی کلومبون. اما اگه اسمم یادت بره بهتره که دیگه هیچ وقت رو نبینیم. وقتی که ناخدا از راه رسید و نخها رو رشته کرده دید خیلی خوشحال شد. به دختر گفت خب پس تو زنم میشی و شروع کرد به دستور دادن برای جشن عروسیش. همه یه کندگاننده های شهر رو دعوت کرده بود. عروس که درگیر مقدمات کار بود اون ستا پیرزن رو پاک از یادش برده بود. صبح روز عروسی یه دفعه یادش افتاد که ای داده بی داد بیداد باید اون ست تا پیرزن هم دعوت می اما وقتی که خواست اسمشون رو به زبون بیاره متوجه شد که اسم همهشون رو فراموش کرده. هرچی فکر کرد و مغزش فشار آورد هیچ فایده ای نداشت. نمیتونست حتی اسم یکیشون به یاد بیاره. یه قصه حسابی افتاد سر دلش. ما خدا متوجه ناراحتی عروس شد. ازش موضوع پرسید اما عروس لب باز نکرد. نمیتونست ناراحتیشو به زبون بیاره. دامادم فکر کرد شاید چون روز مناسبی رو برای عروسی انتخاب نکرده به خاطر همین عروس ناراحته. و برای همین عروسی رو انداخت برای فردای اون روز ولی فردا فرداوز بدتر شده بود روز بعدش هم همینطور هرچی که میگذشت پیشونی عروس که انگار داره راجع موضوعی فکر میکنه بیشتر چیم میافتاد و بیشتر بیدل و دماغتر میشد شد ناخدای جوون تقلا می کرد که عروس رو بخندونه و باهاش شوخی کنه براش قصه بگه اما انگار نه انگار داماد که دید دیگه نمی تونه کاری انجام بده تا عروسش رو خوشحال بکنه صبح که از خواب بیدا شد رفت به شکار بسطهای جنگل که رسید توفان شدیدی اومد. ناخدا پناه برد به یه کلبه که توی تاریکی اونجا تونسته بود پیدا کنه. توی کلبه وقتی داشت استراحت میکرد یه های صدایی شنید. آی کولومبینا، آی کلمبار، آی کلمبون؟ قابله بذارین تا آش درست کنیم. این عروس لعنتی ما رو به جشن عروسیش دعوت نکرد. ناخدا روشو برگردوند و سه تا پیرزن و دید. یکی با موژه هایی که زمینو جارو می دومی دو با لبایی که تا نوک پاش آویزون بود سومی هم با دندونایی که به زانوهاش میرسید. می رسید. نخدا به خودش فکر کرد؟ نگاه کن. حالا میدونم چی برای خندوندنش باید تعریف کنم اگه از این چیزایی که الان دیدم نخنده دیگه هیچ وقت نمیخنده؟ خلاصه. برگشت خونه و به عروسش گفت گوش کن ببین چی میگم امروز تو جنگل بودم واسه اینکه بارون نخوره بهم رفتم توی کلبه تا رفتم تو سه تا پیرزنه رو دیدم یکی با مژغهایی که زمین و جارو کرد یکی دیگه با لبایی که تا پاش آویزون بود هم با دندونایی که تا زانوهاش می اسمشون کلمبینا و کلومبارا و کلومبون بود گل از گلش شکفت حالا نخند کی بخند گفت فورا دستور ناهار عروسی رو بده اما ازت خواهش میکنم چون اون ستا پیرزن خیلی منو خندوندن بذار که اونا رو هم عروسی دعوتشون کنم همین کار رو هم کردن روز عروسی برای اون ستا پیرزن یه گوشه یه میز گرد گذاشتن اما امقدر کوچک بودن که جز موجه ها و لبها و دندوناشون چیز دیگه ای معلوم نبود. نهار که تموم شد داماد از کلومبینا پرسید آهای زن مهربون به هم بگیم چرا اینقدر موجهاتون بلنده؟ کلمبینام گفت از بس به نخای نازک چشم دوختم. بس اون یکی پرسید شما چرا اینقدر لباتون بزرگه؟ کلومبارام گفت از بس که انگوش به لبام زدم تا نخارو خیس خیست کنم. پس ثومی هم پرسید شما چرا اینقدر دندونات بزرگه که زانوات میتونی باهاش هاش بخارونی. گفت از بس که گره نخار با دندونام جویدم. داماد بعد از شنیدن اوضا و احوال پیرزنها به همسرش گفت برو دوکار کارو بیار. وقتی عروس دوکار رو براش آورد. داماد همه ی اونا رو انداخت تو آتیش بخاری و گفت تو دیگه نباید تا آخر عمرت نخریسی کنی. خلاصه عروس چاق و چله از اون روز به بعد شاد و شنگول زندگی میکرد. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها ماجراهایی از جادویی سفر به سرزمین های جادویی و تلزم شده، رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا، همه در در اینها و بیش از اینها،